سلام دوستان خوبم باز هم خیلی خوشحالم که در خدمت جناب آقای مویین قهرمانی هستم و قراری که از تحقیقات و ریسچ هایی که ایشون داشتن ما رو بهرمند کنند در حوزه مبحث خامگی و یا در حقیقت همون خوردار نیک هستش که اسم کتاب فارسیشون هم هستش جا بابای موهین قهرمانی سلام عرض میکنم خدمت شما و شما خودتون شروع کنید ریشو قیچی دست شما هر طور که صلاح میدونید پیش بریم و این برای این برنامه برای ما چی آماده کردین یا برای دوستان ما در خدمت شما هستیم منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوانده های محترم خیلی از شما متشکرم که دوباره فرصتی رو ما حقیقا کردین که بیشتر بتونیم به خانگی آخاری و جذبمونو بکار میذیم. در این قسمت میخوایم راجع به اصول خامگی آخاری صحبت کنیم. یعنی اصلا اینکه خامگی آخاری به چه شکس باید باشه چه چیزایی در خامگی آخاری با سیرایت باشه که وقتی نتیجه بهتری بگیریم. خب به یه تعریف کلی از خامگی آخاری اینطور گفته میشه که در خامگی آخاری تغذیه بایستی که کاملاً مطابق با اصول طبیعت باشه. یعنی اینکه این اصول طبیعت حالا شامل استفاده نکردن از آتش میشه شامل پرهیز از مواد غذای تخمیل شده یا ترشیجات یا موادی که خلاصه به شکل غیر طبیعی فرآوری شده میشه شامل پرهیز از مصرف نمک و ادویجات میشه به طور کلی اما حالا باز خود خامگی آخران چند هستن حالا یک اده بیشتر میوه خورن که میگن میوه خاری با بدن انسان بیشترین سازگاری رو داره و یک از ای هم حال سعی میکنن تا حد ممکن مصرف بقیه چیزا رو مثل ادویه جات و نمک رو نه اینکه که کاملا قطع کنن و خوب به حد برسونن عرض چند که در خامگی آخری اگر بخواد به صورت اصولی انجام بشه چون خامگی آخری از 40-50 سال پیش که شروع شد جنبه 6 و شروع شد که یعنی در موردش کتاب نوشتن و افرادی اون رو تجربه کردن و تجربیاتشون رو منتشر کردن خب به شکل مختلفی انجام شد مثلا یک عده بیشتر جوانه ها و بسرجات رو مصرف کردن یک عده بیشتر به همون سمت میوه‌خوری رفتن یک عده رو کم مصرف کردن یک عده زیاد مصرف کردن در مجموع اینا نتیجه که تا امروز حاصل شده کسانی بیشتر یعنی بهترین نتیجه رو در خامه‌ای در طول چند دهه در دراز مدت. کسانی به نتیجه رو گرفتن که بیشتره بخش غذاشون میوه ها بود یعنی چون میوه اولا برای هضم توسط بدن هضمش خیلی راحت تره و طعمش مثلا طعم میوه طعمیه که به طور طبیعی و بدون نیاز به هیچ نو دستکاری بیشتر با طبیعت انسان نسبت به مثلا سبزیجات یا غذاهای های دیگه و اینکه سوخت اول بدن که گلو گلوکوز هست و فروکتوز قند های ساده میوجات منبع غنی و در واقع بهترین منبع تامین قند های ساده هست یک نکته خیلی مهم که وجود داره در تامین انرژی بدن اینه که تمام مواد غذایی که ما میخوریم دو نقش دارن در بدن یا نقش ساختاری دارن مثل پروتین ها چربی ها یا نقش سوختی دارن که عنوان منبع انرژی استفاده میشه که حالا این نقش سختی رو مرکب و چربی ها و پروتین ها همه میتونن نقش سوخ، سوخت هم داشته باشن برای بدن منطقه تفاوتی که در این بین هست اینه که قند های ساده خیلی راحت تر میشه و مواد مضر به جا نمیذاره از خودش قند های پیچیده مثل نشاسته اینها ها قند های مرکب ببخشی این ها یک مقداری مشکله و انرژی زیادی صرف هضم خودش میشه به همین خاطر مثل غنت های ساده فوری در بدن انرژیش آزاد نمیشه و یه مقدار بدن رو خسته میکنه البته این به این معنی نیست که میزان مصرف نشاسته مطلقاً باید صفر باشه چون مثلا بعضی میبه ها مثل موز حتی وقتی کاملا برسه باز یه مقدار کمی نشاسته داره اما در کل بدن ما تواناییش برای هضم نشاسته کمه یعنی یک مقدار کمی نشاسته رو در طول روز میتونه به طور طبیعی و بدون فشاری میکنه. اتایسو کنه چربی ها و پروتئین اگر بخواد به عنوان سوخت در بدن استفاده بشه یعنی مثلا رژیم غذایی مثلا فرض کنیم مثلا رژیم اتکینز یا این رژیم هایی که برای کاهش و وزن این ها به کار میره که پروتئینش خیلی بالاست این لاغر هم میکنه چون اینها پروتئین و چربی اگه بخوان تبدیل به قند بشن مواد زائد به جا میذارن که خود این باز دفع دف کردنش از بدن یه مقدار زیادی از توانای بدن رو کم میکنه و فشار زیادی به بدن میاره. واسه همینم رژیمی که پروتئینش خیلی بالا باشه و مثلا نشاسته و قندش کم باشه، در ظاهر شخص لاغر میشه اما عوارض جانبی داره. چربی و پروتئین نقش اصلیش در بدن ساختاریه، یعنی نقش طبیعیش. اما خب اینطور هم نیست که اگه غذای ما میخوریم یک مولکول چربی و پروتئین از اون هم حتی تبدیل به انرژی نشه. نه، همه اینا نسبی هست. ولی مثلا ما میوه که میخوریم میزان پروتینش حدود یک درصده یا کمتر میوه های شیرین که این میزان پروتین با میزان پروتئین در شیر مادر تقریبا درابره تازه شیر مادر که بچه در حساس ترین دوران رشدش هست که مثلا بیشترین رشد رو در دو سال اول داره و طبیعتا بیشترین نیاز به پروتین رو هم در همون دو سال داره میزان پروتینش شیر مادر یک درصده حدود یک درصد میوه‌های درختی و میوه‌های شیرین هم میزان پروتئینشون در همین حد یعنی بیشترین شباهت رو به شیر مادر انسان از نظر درصد ترکیبات میوه‌ها دارند اما منابع غنی از پروتئین هم در خام گیاهخواری مغزا و دانه ها هستند که ده 15 و حتی بعضا 20 درصد هم پروتئین دارند که به همین خاطر که پروتئین بالو و کرب اگه زیاد مصرف بشه بدن زوزخخ مثلا باعث خستگی زوزخستگی باعث این مشکلات خاص خودش میشه به همین دلیل باعث ها رو در حد حداقل میزان مصرف کرد در خامگیاخوری و میوه ها رو در بیشترین مقدار یعنی رژیمی که حالا امروز به عنوان رژیم 8 10 10 در دنیای خامگیاخوری معروف شده ای رژیم ایتی تن -10, 10 که اگه سرچ کنید در اینترنت اطلاعات بیشتری راجبش پیدا میشه این رژیم اینطوری میگه که از کالری روزانه‌ای که ما داریم دریافت میکنیم 80 درصدش باید از میوه‌ها همین بشه، میوه‌های شیرین و آبدار، 10 درصدش از سبزیجات و 10 درصدش مغزها و ها البته در مورد سبزیجات باز یک اختلاف نظرهایی هست، اینکه سبزیجات خودشون به طور طبیعی هیپومیداری سموم دارن که مثلا همون طعم تند یا تلخ سبزیجات مربوط به همون میشه. که اونها اگر افراد بشه در مصرفشون برای بدن مشکل ایجاد میکنن و حتی بعضی از این سمومی که در سبزیجات هست ممکنه باعث ایجاد ناراحتی عصبی یا توهم یا مشکلات گوارشی عطا باشه که به همین خاطر گفته میشه که سبزیجات یا اصلا مصرف نشه یعنی فقط میوه ها و مغزا رو مصرف کنیم یا اینکه اگر مصرف میشه در حد همون 10 درصد کالری حالا بر کالری میخوایم حساب کنیم خب سبزیجات کالوری کمتری دارند نسبت به میوه ها و مغزها و به همین خاطر ده درصدش حجمش نسبتا زیاد میشه در رژیم روزانه. این یک اصل عمومی و کلی هست در خامگی آخاری که تا به امروز نتیجه خوبی داده یعنی بهتر از مددهای دیگه نتیجه داده اما یه موضوع خیلی مهمی هم که در خامگی آخاری هست بحث ترک عادتهای قبلیه که خب این بیشتر هم جنبه روانی داره چون سالهای سال ما به یک نوع تغذیه عادت کردیم و حالا تغییرش که اصلا خودش یک چالش آداش هست خیلی از خامگی آخاران متاسفانه همچنان یه سری عادات بعد قضایی که از قبل داشتن رو در خامگی هم ادامه میدن همون آدات بعد رو یعنی به این شکل دیگه ادامه میدن مثلا قبلا زیاد نمک میخوردن در پخت خاری و گوشتخاری الان هم که خامگیاه آخار شدن همچنان زیاد مص... نمک مصرف میکنن یا مثلا چیزای ترش زیاد دوست داشتن در خامگیاهخاری هم میوه‌ی ترش زیاد میخورن این خیلی, خیلی مشکات مشکلات بزرگی به وجود میاره یعنی با وجود اینکه طرف میاد و حتی با همون اشتباهاتش خامگیاه آخار میشه یه سری بیماریش هم درمان میشه اما در دراز مدت یه سری مشکلات جدید براش به وجود میاد چرا به اینکه یکی هم عادت اشتباهی که داشته اون خودش به خودی خود یا یعنی این ذاتن به بدن داره آسیب میزنن و یکی اینکه وقتی بدن بعد از خامگیاه خالی پاک سازی میشه و بالاخره یه مقداری از زیادی از سموم بدن بعدا دفع میشه، بدن حساس سر میشه در مقابل سموم این یه نکته ای است که شاید در یک شرایطی که مثلا آلودگی ها زیاد باشه یا در یک محیط آلود ای باشین خامگیاه خالی باز بشه که بدنمون حساس سر بشه و زودتر واکنش نشون بده به دلیل اینکه مثلا پرزهای روده با این رژیم سالم و طبیعی تمیزتر میشن و خب این همونطور که جذب باعث میشه جذب مواد غذایی بالاتر بره در روده ها اگر قضایی که میخوریم هاوی یک سمومی هم باشه جذب به اون سموم هم بالاتر میره چون وقتی پرده های روده پاک بشه مثلا از موادی که بهش چسبیدن مثل حالا موادی که قردن میخوردیم مثل گوشت و قلات و چیزایی که در روده برای مدتی طولانی میموندن و میچسبیدن به دیواره روده ها بعدان در خانگی آخری دیگه پاک شده روده این علاوه بر اینکه جذب مواد غذایی رو میبره بالا که این مزیت برای بدن، اما از طرف یک ای ای ای ای ای ای مسئله مسئله‌ای هم که داره همین که اگه چیزی که می‌خویم سومی‌توش باشه، جذب اون سومم میره بالاتر، نسبت به دوران پختخوری عطا. که مثلا خب مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد ادویجات و مصرف زیاد میوه‌های ترش و میوه‌های نارست این باعث میشه که در خام‌گیاهخوری به مشکل بخوریم و حتی بعضن یک مشکلاتی برام به وجود بیاد که قبلا وجود نداشت مثلا من یک دوستی داشتم که یهو میوه خار بود و به گفته خودش روزی نیم کیلو لیمو ترش میخورد چون قبدا هم همیشه در طول زندگیش چیزای ترش زیاد دوست داشته و این بعد از چند ماه با اینکه مثلا خیلی سرحال بود میرفت ورزش و خیلی در ظاهر مثلا خیلی شاداب بود بعد از چند ماه یه دفعه به لرزش دست و پا دچار شد که مثلا رفت آزمایش داد، حتی به دوازده خوناش هم مثلا در حد نرمال بود، هیچ مشکلی نداشت ظاهرا. اما خب یک آسیب جدی دیده بود بدنش خیلی عصبی شده بود و این میوه ترشی رو که گذاشت کنار یواش یواش حالش بهتر شد. به علاوه الان هر چند خانگی آخری ترک کرده ولی باز نسبت به اون دورانی که میوه ترش زیاد می‌خورد در خانگی آخری اوضاعش بهتره. اینه که این جزئیات اگه ما دقت کنیم اصلا حتی در یک رژیم غیر از خام گیاهخوری در گیاهخوری یا حتی در پختخوری و همه چیز خاری هم ما همین نکات رو رعایت را کنیم خیلی نتیجه مثبت میده. خب مثلا اینکه کمتر نمک بخوریم، کمتر ادویه جات مصرف کنیم و اینکه عاداتی که, که اشتباهه مثلا اگه زیاد ترشی میخوریم اصلاحش کنیم. اصلا کلاً هر رهایی که می‌خواید انتخاب کنیم. عاداتی که برای بدنمون مفید نیست و سعی کنیم ترک کنیم و یه مشکل بزرگی هم که خود من حتی تا امروز باش درگیر بودم متاسفانه اینه که اگه قبلا کم،, کم تحرک بودیم در رژیم همه چیز خاری الان هم همون شیوه, همون شیوه زندگی رو داریم مثلا من دو ماه تونستم برم باشگاه ولی متاسفانه بعدش به خاطر مشغله ها و به خاطر یه سری بینزمی ها دوره ورزش رو رها کردم و خب این ورزش نکردن در هر صورت به ضرر بدنه اما در خامگی آخری بدن اصلا میتلبه که بیشتر تحرک داشته باشه. چون انرژی بیشتری داره دریافت میکنه و خب غذاایی که میخوریم زود حزمتره نیاز داره که زودتر این انرژی تخلیه بشه و اگر این کار رو نکنیم شاید حالا خره به واسطه اینکه رژیم سالن تای داریم تاثیرش کمتر باشه نسبت به زمانی که تغذیمون هم ناسالمه اما بازم مزارات خودشو خودش رو داره و این چیزیه که من فکر میکنم اگر کسی میخواد خام گیاه بشه حتما باثی برای کل تریی سبکه زندگیش یه بران ریزی اساسی بکنه. چون در غیر این صورت اون نتیجه که باید رو نمیگیره و بعد فکر میکنه این مشکل از روش تغذیه است در صورتی که خود میگی آخاری و خود تغذیه طبیعی تغذیه که مبتنی بر قوانین طبیعت باشه مشکل این نداره مشکل همین ریزه کاری که ما نمی نمیکنیم اما یه نقطه مهم دیگه هم هست که اون به دلیل شرایطی که ما الان توش زندگی می‌کنیم که غذای ارگانیک خیلی به ندرت گیر میاد، اکثر غذا دیگه و به مواد... مواد شیمیایی، در بین گیاهان یه سری‌هاشون خیلی سم شیمیایی در اونها بیشتر استفاده میشه به خاطر آفاتی که دارن یا به خاطر اینکه اونقدر که باید قوی نیست، خاکمون غنی نیست و خود گیاه در مقابل آفات خیلی آسیب پذیر شده، مثلا میوه‌های مثل خیار و گوجه فرنگی خیلی بی انداز سم میخارن. حتی مثلا در ایران چند وقت پیش گفته بودم که گوجه فرنگی ها سی بر... چند برابر بیشتر از حد مجاز سم دارن که این خب خود خيار و گوجه فرنگی و بخصوص خصوص فرنگی خودشون یه موادی مثل اسید و ملاتونین دارن که اینا خودشون ذاتا مواد سمی هستن برای بدن و باید از بدن دفع بشه چون هیچ نقش مفیدی نداره خودشون مشکلاتی ایجاد میکنن حالا حالا این که سموم بیشتری هم به اینا زدن چی و اومدن و اینا رو مثلا برای اینکه بیشتر بتونن نگهداری کنن ناراست می‌چینن. همه اینا که جمع بشه این تبدیل میشه تقریباً تقریبا یه سم خالص اینطور گیاهان که مگر اینکه حالا بشه ارگانیکش رو پیدا کرد یا مثلا اگه کسی بتونه خودش بکاره و در شرایط طبیعی‌تر استفاده کنن در غیر این صورت بهتره که تا حد ممکن ازش پرهیز کرد. یه سری افراد که اصلا بیماری دارن و بدنشون حساس اصلا نباید مصرف کنن اما اونایی هم که حالا میتونن و میخوان مصرف کنن بایستی در مورد این طور مواد قضایی که میزان و سمومش بیشتر از بقیه است محدودیت اماد کنند و کمتر مصرف کنند. این بود خلاصه ای از نکات مهم و کلی در خامگی آخری. اگه موافق باشید ما یه میان برنامه میرین و دوباره خدمت شما برمیگردیم. بعد چشم در خدمت نست... شبی در سرما شبیه از شبها هوا سرد بود و حضرت امیرالمومنین علیه السلام از کنیزش لباسی خواست و کنیز یک قطعه قطیفه خدمت حضرت آورد حضرت فرمود این قطیفه از آن کیست؟ کنیز گفت از بیت المال است حضرت فرمود ببر در سرما بخوابم و بی لباس بمانم بهتر است از این خیانت به مردم بکنم حضرت امیر المومنین علیه السلام شب را در سرما بیرخت خواب خوابید و قطیفه را به روی خود نکشید در مورد عدوی اجات این رو تا یادم نرفته ببینید فلسفه استفاده از عدوی اجات اینه که خیلی از موادی که انسان ها به صورت پخت مصرف میکنن یعنی باید بپزنشون به صورت خام قابل استفاده نیست یا هضمش سنگینه یا اصلا قابل جویدن نیست مثل غلات یا حبوبات یا این که اصلا خوشمزه نیست وقتی انسان روی آورد به پخت و پذ بعد از کشف آتش ادویجات رو آورد وسط که قزو رو خوشمزه تر کنه چون که بالاخره این غذای غیر طبیعی که پختش غذای اصلی انسان نیست خب این بالاخره طعمش خوشایند نبوده برای انسان طعم و ظاهرش حتی بعضن که استفاده از ادویجات واسه همینه که اینو خلاصه یه جوری زاغهشو گول بزنه انسان و بتونه این رو به مصرف کنه اما موضوعی که هست اینه که اکثر ادویجات اگه دقت کنین طعم تند یا تلخ دارن یعنی بدمززه هستن که اصلا نمی یعنی مثلا هیچ ادویه رو ما نمیتونیم به تنهایی یه قاشق ازش بخوریم مثلا از جمله نمک از جمله خیلی از این ادویجاتی که میزنیم فلفل اینا نمیتونیم یه قاشق خالی ازش بخوریم اینقدر آزاردهنده است ولی با غذا که قاطی میشه به آخر تم عوض میشه یه رقیق تر میشه و این ما خلاص اینو شده میخوریم ولی اون آثار منفی اون سمومی که داخل ادویجات هست این همچنان در سیستم گوارشی ما کار خودش انجام میده و خرابکاری‌هاش رو در بدن آثارش رو به جام میذاره. عدوی جا می‌ذاره و ادویه‌جات یک مشکلی که دارن اینه که اعتیادآور هستن به دلیل اینکه زاق... هم زاقه ما عادت کرده بهشون و هم اینکه بعضی از این مواد سمی که داخل ادویه‌جات هست به طور طبیعی خودشون اعتیاد ایجاد میکنه برای بدن این باعث میشه وقتی که میخوایم به سمت خانگی یا خال بیاییم برامون مشکل‌تر بشه و این چیزیه که باید دقت کنیم اگه در خامگی آخری این کامل بذاریم کنار که ویجات کامل حذف کنیم. اگر نم باز مصرف ویجات رو به حداقل بررسونیم که آسیبوا کمتری از این بابت بهمون برسه. این نکات رو رعایت کنیم در خامگی آخری میتونیم موفق باشیم و همچنین در هر رژیم دیگه ای هم اگر این نکات رعایت را بشه بشه حد خودش نتیجه مثبت میده. بسیار عالی جواب های قهرمانی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیارمون گذاشتید من خودم در این موارد جست و گریخت اطلاعاتی داشتم منطقه مال شما خیلی منظم و خیلی به ترتیب و همه جانبه بود و به همه جوانه نگاه شده بود خیلی ممنون از این که این وقت تو در اختیار ما قرار دادید من خودم هم شخصا از شما تشکر میکنم همین که از طرف دوستان کانال از شما تشکر میکنم اطلاعاتتون خیلی خوبه و ما داریم استفاده می کنیم. امیدوارم که تو برنامه بعدی هم شما رو داشته باشیم شما ما رو همراهی کنید و ما بتونیم از راهکارهایی در جهت خوراک بهتر و سلامت تر میدین رو هم خودمون انجام بدیم هم که در اختیار دوستان و علاقه بذاریم که اگر دوست داشتن استفاده کنن امتحان کنن و آروم آروم بتونن زائقه تربیت شده انسانیشون رو به سمت خوراک و زائقه سالم پیش ببرن خیلی ممنون ازتون خودن نگهدار هم متشکرم از دوستتون. خدا نگهدار